سلام و درود خدمت شما همراهان همیشگی کانال هزار افسان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام بکام. از کتاب افسانه های روسی داستانی رو تقدیمتون می کنم به نام سنگروچکا. امیدوارم بشنوید. یکی بود یکی نبود. زوجی بودن به نام های ماریا و ایوان. اونا زمان زیادی و با هم تو صلح و صفا زندگی میکردن و همدیگر رو خیلی دوست داشتن. همه چیز عالی بود ولی اونا یه اندوه خیلی بزرگ داشتن و اون این بود که داشتن پیر می و هنوز بچه ای نداشتن. زمستون از راه رسید یه شب برف سنگینی بارید. صبح بچه ها از خونه هاشون بیرون ریختن، سورتمه سواری میکردن. گله برف پرتاب می و بعد شروع کردن به ساختن یه آدم برفی. ایوان و ماریا کنار پنجره نشستن و بچه همسایه رو تماشا کردند. ماریا آهی کشید و ناگهان ایوان گفت بیا ماریوشکا، بیا ما هم بریم آدم برفی درست کنیم. امروز روز فوقلادهی برای بیرون رفتنه. باشه بریم. فقط ما آدم برفی درست نمیکنیم. یه بچه کوچولو برفی درست میکنیم یه دختر. بعد شروع کردن و تو باغشون یه آدم برفی ساختن. یه پیکر درست کردن براش دست و پا و بعد یه کله گذاشتن. ایوان دماغ و درست کرد و یه جفت جای خالی برای یه گذاشت. ناگهان. آفتاب از پشت عبد ظاهر شد و برف زیر انگشتای ایوان برق زد. جوری که انگار چشما داشتن میدرخشیدن وقتی که به لبا شکل داد، اونا صورتی شدن و لبخند زدن. آدم مرفی شونه هاش رو تکون داد انگار که داشتونا رو بالا می و بعد از اون دست و پاهاش رو تکون داد. ماریا با تعجب فریاد زد ایوان، دخترمون زنده شد اون دستای آدم برفیو گرفت و اونو به خونه کشوند و پشت سر هم تکرار میکرد. دختر کوچولی خاستنی من سنگروچکای عزیزم از اون به بعد سنگروچکا با اونها زندگی کرد بزرگ شدنش خیلی سری بود رشدش روزانه نبود بلکه انگار ساعت به ساعت رشد میکرد قبل از اینکه زمستون تموم شه اون دیگه یه دختر بزرگ شده بود هر روز زیباتر میشد چشماش آبی بود موی بافته و قهوهای روشنش تا پایین کمرش آویزون بود صورتش به سفیدی برف و لباش قرمز روشن بودند اون همیشه لبخند میزد سنگوروشکا خیلی خونگر، مهربون و باهوش بود طوری که تموم دخترای روستا تو کلبه ماریا و ایوان جمع می شدن. دخترها به سنگوروشکا خیاتی، بافتنی و قلاب دوزی یاد دادن و اونچه چه آوازهایی که از اونا یاد نگرفت. صداش لطیف و صاف بود و وقتی آواز میخون همه رو مجذوب میکرد. ایوان و ماریا دخترشون رو زمستون گذشت و خورشید بهاری کم کم زمین رو گرم می‌کرد. همه خوشحال بودن ولی سنگوروچکا غمگین شد اون با گذشت زمان هر روز قمگین تر و ساکت تر ایوان و ماریا مدام از اون سوال می چی شده دخترم؟ مریض که نیستی نه؟ چیزی نیست پدر نگران نباش مادر من خوبم. ولی اون از خورشید گرم پنهان می شد و زیر سایه درختای بید خودشو به جریان خونک رودخونه می و حتی هر از گاهی دوباره آواز می خوند. مخت سیاه آسمونو می پوشند خوشحال بود. یه بار آسمون سیاه شد و تگرگ بارید. سنگوروشکا شاد بود انگار یه برادر کوچولو به اون داده بودن. ولی وقتی خورشید دوباره طلو کرد و تگرگا کم کم آب شدن زار زار گریست. هیچ کس تا حالا اونو ندیده بود. تابستون برگشت. بعد از او طولانی آفتابی بودند یه روز بعد از او دخترای روستا تو بیشه درختان قان جمع شدن تا آواز بخونن و برقسن. اونا از سنگوروشگاه خواستن که به جمعشون بیا. اون نمیخواست بره و ماریا مایل نبود که به اون اجازه رفتن بده ولی بعد فکر کرد که این کار ممکنه دخترش رو خوشحال کنه. اون به سنگوروشکا گفت برو فرزندم، همراه دوستات برو و شما دخترها مراقب دخترمون باشید و اونو ناراحت نکنید. دخترها دست سنگروشکا رو گرفتن و آواز خونون به طرف بیشه دویدن. وقتی آفتاب داشت قروب میکرد، دخترا دست تو دست همدیگه حلق زنون رقصیدن. بعد گل چیدن و تاج گل بافتن و روی سرشون گذاشتن. بعد وقتی هوا تاریک شد، خار و خاشاک جمع کردن و یه آتیش بزرگ برپا کردن و از روی اون پریدن. سنگروشکا یه طرف ستاده بود و تماشا میکرد دخترا متوجه اون شدن. دویدن به طرفشو شروع کردن به زدن و تشویق کردن. اون دوباره به اونها پیوست. دخترا از روی آتیش پریدن، خندیدن و فریاد کشیدن. ولی ناگهان پشت سرشون صدای ای مثل آه شنیدن. اونا اطرافشون رو نگاه کردن ولی هیچکس اونجا نبود. با ترس به همدیگه نگاه کردن و یکی زمزمه کرد دخترا، سنگوروچکا کجاست؟ بچه ها دنبال سنگوروچکا این طرف و اون طرف رو به سرعت گشتند. در حالی که اسمش رو صدا میزدن تو قسمت های مختلف جنگل پخش شدند. همه جا رو گشتند ولی نتونستن پیداش کنن. انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. به محض اینکه که سنگوروچکا به آتیش نزدیک شد حرارت اون رو گرفت و بخار شد و رفت هوا. این همون موقعی بود که آه کشید. تو اون لحظه یه مه نورانی از ها بالا رفت، به یه ابر کوچیک تبدیل شد و بادی اونو با خودش برد. از بالای جنگلا، از بالای دریاها. اونا روز بعد و روز بعدش رو دنبال سنگروشکا گشتن. ایوان و ماریا به خاطر دخترشون خیلی غمگین بودن. اونا تمام روزها را در حالی که در جنگل ها سرگردان بودن میگذروندن و فریاد میزدن هی hey, سنگروچکا دخترم مردم میگن که اون زوج تا امروز به دنبال سنگروچکا تو بیشه ها و جنگلا سرگردونن. اگه به جنگل رفتید مراقب اونها باشید ماریا یه, یه زرد میپوشه ایوان یه پیراهن بنفش